هرچه زود براید، دیر نپاید. خاک مشرق شنیدم که کنند به چهل سال کاسی چینی. صد به روزی کنند در مردشت، لاجرم قیمتش همی بینی. مرغک از بیزه برون آید و روزی طلبد. وادمی بچه ندارد خبر و عقل و تمیز آنکه ناگاه کسی گشت به چیزی نرسید وین به تمکین و فضیلت بگذشت از همه چیز آبگیره همه جا یابی از آن قدرش نیست لعل دشخار به از آن است، ازی.